بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه أجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله واسكنه فسيح جنانه وترك المراء والجدال والخصومات في الدين فترك المراء والجدال والخصومات في الدين باهم خصومات نكونين در مسائل ديني فام جدال وبحث نكونين در مسائل ديني يعني اذا شني رسول الله صلی الله علیه و سلام سخنی میگویند یا صحابه قرآن و حدیث طوری تفسیر کردن بگیم رو سر و چش با هم بحث و جدال نکنیم خصومت نکنیم در یک مسائلی که روش دلیل از قرآن هست بگیم با عقل منجور در نمیاد با فهم منجور در نمیاد ادب با رسول الله صلی الله علیه و داشته باشیم لا تقدم بین يدي الله و رسوله تقدم نکنید پیشی‌گویی نکنید پیش‌نگی‌ری بیادبی نکنی نکنید سره تمیمی وقتی که اومد به ظاهر فعل رسول الله نگاه کرد دیدی که تقسیم میکنه به عدی میده عدی نمیده اومد بر اساس ظاهر فعل رسول الله صلی اللہ بدون اینکه عمقوار بیاد وارد بشه با تمام بیادبی با و گفت عدل رسول الله صلی الله علیه فرمودند و من عدل من عدالت نکنم این قصم اکبر و شد گفت عدل دستور دادیم بر رسول الله صلی الله علیه و آله رسول درواتی می آیا امان الله عز وجل الا اهل والأرض و الارض فلا تامنوا خدامر امین شمورد برای آسمون ها و زمین شما برای امین نمی شماری مرا امین نمی این گستاخی و بیادبیه روزی در سودان بودم کنار روز نی یک از ایرانیان با من بود اونجا درس می خون تو بعد رود نی رو نگاه این روز گفتم بله گفت که میبینی چه حاک گرد و خاک داره قهوهی رنگ شده از گرد گرد و خاک داره گفتم بله می‌بینم پر از گِل و پر از گِل و خا و خاشاک و نمی‌دونم از بس که دیگه بارون میباره اون منطقه دیگه رنگ آب عوض شده رنگ آب نیست صاف و گوارا نیست قهوه‌ای شده گفت که با عقل به من گفت گفت که با عقلت چه جور در میاد که رسول هم میگه دو تا رود هستن که در از بهش در زمین جاری میشن یکی یکی و یکی دجله و فرات که ریشش در آسمان هاست، ریشش از بهشته. چطور با آغذیه در میاد؟ چه شعراب داره کره زمین به بهشت خداوند که از زیر سد سلطنتها دوتا رود جاری بشن بیام به زمین. چطور؟ اصلا با آغذیه چی میبینی اصلا؟ چطور؟ کانال کشیدن، لوله کشیدن. میگه این بام من جود در نمیاد سطح آنها. در درسته. نگاه نمیکنه یه طرف چندی پیش همینطور توی خوراک باهام. ملاقات کردیم اومد قصه سلیمان علیه السلام و همبستریش با 99 تا زن در یک شب گفت کلی میشه ما طول شب دراز کنیم 12 ساعت هر زنی ده بیخه. ده دقیقه تدافع لازم داره میگه میشه یک شخصی تو عرض 12 ساعت با 100 تا زن همبستری بکنه مثلا با عرض در, در میاد سبحان الله تو با عقل خودت نگفتی شاید شاید خداوند مثلا من کمترین حالتی که میگم کمترین چیز خداوند هم که را بر یوسا ابن لون حبس کرد که روز تلوانی بشه شد شب شبرو تلوانی کرد با حذف چه مانعی هست؟ چرا بچه معجزه نگاشن میکنی نبود بحث اعتراض اعتراض شخص بیاد با عقل خودش اعتراض بر حدیث راست صدای شخصی که میاد بیشه هنر رشید حدیث اونجا نکشه در بحث آدم و موسی علی السلام احتجاج آدم و موسی و موسى آدم که موسى و آدم با هم دیگه بحث میکنن گفتند میکنن بعد اون شخص نشسته کنار حرور رشید بعد دیگه که که یلا آدم و موسی با هم ملاقات کردن بینشون خدا میدونه چقدر زمانه شخص میاد ظاهر قبال شاید در عالم ارواح با هم ملاقات کردن شاید و شاید چرا شخص میاد اینطوری گستان خانه بر حدیث الله وارد میشه اونم حدیثی که فلدش صحیحه بعد حرور رشید نراحت میشه خشمی میشه او را ترد میکنه از ای شخص گستاخ از رسول خدا باید به سخن میگه صلی الله علیه وسلم تو میگی چطور کیف تو کی هستی که میگی کیف کی هستی خودتو بزن قدر خودتو بدان جدال و خصومت در دین نکن نه نیا،, نیا یک چیزی را با عقل خودت اونطوری که خودت ذهن تو میگه با ذهن خودت بیای درباره باره حدیثی یا قرآنی قذابت بکنی شخص هیچ مطالعه ای نکرده میاد بحث میکنه جدال میکنه هیچ وقت بحث نکن ایا اینکه تحقیق کرده باشی رفتی بحث کردی تحقیق کردی کتابها را خوندی بیا بحث کن اما اینکه خامی هیچی نخوندی با من جو آره میاد اشتباه داری بکنی راه تباهه این راهت راه صراط مستقیم نیست ابغض الرجال إلى الله الألد الخصم رواه البخاري و مسلم مبغوظترین شخص میشه خداوند اون شخص زدود اون شخص تون اون شخص خوش اون شخص که خصومت خصومتوار میاد خصومت میکنه حالا خصوصا در وقت دین شخص مبغوظیه اینو دقت درش داشته باشیم جدال اگر میکنیم جدال باید بانیکی باشه باید با دلیل قرآن و سنت باشه همونطور که قبلا گفتم و میگم وجادلهم باللتی هی احسن احسن در رفتار و احسن در گفتار, گفتار من دلیلی که میگیم از قرآن و سنت باشه به فهم سلف امت باشه در رفتار فقول قول له قولا لینا نرم نه نا اینکه تو در اجتماع میکنید تو مبتدی تو فلانی امام متوی رحمه الله میگیا در مسائل اجتهادی کسی حق ندارد به کسی نه تکفیر بکنه نه تضبیع بکنه امام امامی رحم الله اویدیات و اما تکفیر فالصواب انه من اجتهد من امه محمد صلی الله علیه و سلم و قصد الحق فاخطا لم يكفر کسی اگر اجتهاد بکنه بر خلاف حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قد حدث بشیخ مقولے کفر و غیر تکفیر نمیشه بل یغفر له خطا اون اشتباهش با دینی هست تا بعد میگی میاد میگه فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص تكفير بمسجد أو بحال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهن ولا غال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا هر كسي گفت بدأتي جوهلا نذري سخن گفت جومراه جومراهير أو باس كار باون لا تكفير مشي لا تكذيب مشي لا سيما في مثل لا سيما في مثل مسألة القرآن خصوصا در مسئله قرآن مثل اشاعران ما تردید امام نووی اشعریت داشت شما نمیدونید اجازه که اجازه ندارید که بیاد بگید که امام نووی مفتدع بود چی موافق با اشاعران در فیلان مذهب، فیلان مسئله بود حق ندارید این نسی از نسوس مبدعیمی هست قرار بعد این یه که یک دو تا بدعت اعتقادی داره ما سبتش بکنیم چون اینها ها بودن ب تمسكه بالقران اومده صحیح مسلم داره برمون شرح میده متمسك به قران و اشتباه کرده تعوی دو طور شده حق نداریم که اونها رو اونها رو تبدیع و بکنیم اینجا میگه ولا ضال یک ولا ضال يكون كافرا فليت كل مقتن ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقه بل ولا عاصيه لا سيما في مسله و قد فيها خلق من ائمه القوا از گروه های مختلف اشتباه کردن در این مسئله آیا الان ما گفتیم ائمه مثلا نموی اشتباه کردن آیا این دلیل بر اینه که ما بگیم اجتهاد در اعتقاد درست خیر مسئله اعتقادی غیبیه چطور ما اشتهاد درش جایز بدونیم چون ما میگیم اونها اشتهاد کردن اشتباه کردن دلیل بر این نیست که ما در اشتهاد را باز بکنیم بگیم هر کسی میتونه اشتهاد بکنه در مساله اعتقاد مساله اعتقادی مساله حسی نیست که ما درش اجتهاد و اظهار نظر بکنیم اجتهاد ازار نظره ما حق نداریم در مسائل اعتقادی بله امام نووی این کارو کرد اشتباه کرد خدا او را ببخشه بیا موزه کسانی از ائمه متمسک به قرآن و سنت بودن اشتباه کردن پاشو نگذید خدا آنها اونها را ببخشه خاصتا در مساله قران که ابوالقیمیه رحمه الله اینجا داشت یاد میکنه قال و سنت عندنا اثار رسول الله صلی الله علیه و سلم صنات بيشمون أن أحاديثها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنادها صحيح رواية. والصنعة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. صناد مفسر القرآن. دليله أن دليلها شرح درس القرآن. أقيم الصلاة في قديمية رسول الله يجي در مقابله يجي صلوا كما رأيت نماز نماذج بربك بدرت رسول الله يجي نماذج خلي تناش من نماز بكونا. خدوا عن مناسككم نزكت الحج ترجمان ميغريت. و انزلنا ایلیتا ذکرا لتبين للناس ما نزل ایلیهم. ذکر این قرآن نازل کردیم تا برای مردم تبیم بکنیم. کسی که بگه من قرآنی هستم قرآن را میگیم سنت را قبول ندارم. این شخص دچار کفر شده. حکم کفرشو نمیدیم آن. کفر یک مسئله مسئله مثلی خلق قرآن میگی. امام احمد میگه فائل به خلق قرآن کافره ولی مأمون و معتصم و واسق و دیگران رو تکفیر نمی کرد روشت شرس رو نماز می بحث فعلشون کفره کسی منکر سنت باشه یعنی منکر اصلی از اصول دینه منکر مبین قرآنه فعلش کفره شیخ بنبازم کتابی داره در بحث کافر بودن منکر سنت کسی بگه سنت را قبول داره چرا کافره شن خدای من در قرآن میگه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك قسم يقول بفرزندگار محمد إيمان ندارن تا تحاكم بشي حاکم بشی در میان اونها کساییات منکرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشه منکرت حاکم و رجوع بشي قرآن و صلى الله عليه وسلم که خدای من دستور میده که بهش بربغيری في شيء فردوه الى الله والرسول کسی منکره این بشه؟ این انکارش کفره. هرچه بگفتن ما رو تفیر نمی کنیم. فعلش کفره. چرا کفره؟ چون دستور خداوند به رجوع بین دوتا هست. و سنتم مبین قرآنه. شخصی بیاد بگه که من نماز به جای زهری که رسوه تعین کرده من این نماز پنجگانه را قبول ندارم مثل جمال بنا اومد گفت که نماز سه بعده هست ما میگیم این مقوله کفره کسی که بیاد نماز پنج را با واسه بعدش بکنه نماز اصل بر پنج است الا برای مسافر که استثنات و رخصته این تبدیل شریعت این حکم به غیر ما انزل الله شخصی بیاد از ذهن خودش در خلاف اون چیزی که رسول الله قران را تفسیر کردن و تبیین کردن بیاد یک شخصی اجتهاد بکنه بگه رسول الله اینجا اشتباه کرده ما گفته حالا چه میخواد در مسئله ارث و باشه چی می‌خواد در واسه نماز باشه چی میخواد در مسئله روزه باشه چه مسئله در تعدد زوجات باشه شخصی بیاد بگه من تعدد زوجات رو قبول دارم این مال این جامعه نیست ای مال جامعه اون 1300 سال قبل بود این هوای خودش هوای نفسش هوای خودش رو حاکم کرده بر قرآن سنت فانك بما طابا لكم من النساء خداوند دستور داره و صلاه و روزه دو سه چهار اگر ننویسی یک کسی منکر این حق این قانون خدا این شرع خدا این دین خدا باشه این شخص و کف شده هرچ که خیلی از جانوش ها این کوفیه بشه متکبرشون نمیدون چون که اون نفسشونه، از هوای نفسشون یک میپرونن شاید از اعتقاد نباشه ساب خلسان باشه ولی که ما از لحاظ اساس شریعت میگیم سنت مفسر قرآنه و کسی سنت را این کار بکنه سنت را صلاصت دادم این کار انکار بکنه بگم من پای بنده به سنت نمیشم این شخص دوباره کفر اکبر شده ولی از سنت قیاس ولا تضرب لها الامثال ولی از قیاس واضحه یعنی در مسائل اعتقادی اجتهاد نیست، قیاسی نیست. مسائل اعتقادی اجتهادی نیست. که شما بیایید مثلا درباره خداوند قضاوت بکنید جسم هست یا نیست؟ شما در قرآن، سنت جای دیدید که مثلا جای خدا بگه من جسمم یا جسم نیستم. کسی میتونه درباره خدا نظر نظر بکنه؟ بگه خدا اینطوریه، دستش یا این دستشون طوریه. کسی میتونه؟ چرا نمیتونه؟ چون نه خدا را دیده نه مثل خدا را دیده کسی میتونه ادعا خدا بالای عرش نیست؟ کسی میتونه ادعاو بکنه نه میتونه در کرد این انحراف اعتقادیه چون داره برای خدا قیاس میگیره از ذهن خودش چون عرصیو گفته خدا نباید جس باشه جر باشه حج باشه وز باشه فلان فلان پس خدا نمیتونه یه جایی برای خودش داشته باشه برای مکان داشته باشه اگر مکان برای خدا تعیین کردیم این خدا یه جرمیه قیاس ولیس فی سنت قیاس تو نمیتونی در مسائلی که در سنت وارد شده قیاس بگیری قیاس بر جامدات بگیرید، قیاس بر موجودات بگیرید، قیاس بر محسوسات بگیرید. با ذهن خودت با یک مسئله قیاسی حسی بیای اظهار نظر در یک مسئله سنت غیبی بکنید. یک مسئله که با عقل فهمیده نمیشه مثل بحث نیل که سرچشمش از استداتال منتهای است. شما نمیتونید با ذهن خودشون، خودتون نسی از نسیس شریعتی که درکتون نمیکشه را انکار بکنید. مثل قضیه که معتبر بهمون گیر دادن. و بس پشه افتادن توی آب اگر پشه توی آب افتاد اگر آب, آب حیفتون تو میشیت رسول الله اون آب میتونید پشه رو توش بده میتونید پشه رو توش بزنید بیرو بیاری یک بالش زهره بال دیگر تازه زهر یک بالش سمه یکی بالش دوا توش هست شفاطوش هست معتزره یه دادن که شما کثیفید شما فلانید شما نمیدارم ناپاکید باجال شما در نظر می‌گیرید کسی تو صحرا آبی نداره جز یک پارچ یک لیوان آب پشیه توش از تشنی که بی میره یاد این آب بنوشه کدوم آقل میگه باید این آب ریخ نیمشه نباید نوشیده بشه چون پشیه توش افتاده رسولات پروسیه دارن میکنن با جان یک بال شفاست بزنید تو الان بعد از هزار و دیوی سال که تاریخ محفظله داره میگذره. الان کل پزشکان دارن از همین حدیث الله دارن برداشت میکنن میگن بله رسول خدا راست گفته یک بالش زهره بال دیگه شفا و دواست دارن ازش درو تخریب میکنن استفاده میکنن ما نیاز نداریم که غربی ها بیان تایید بکنن که بال پشه دو, دو تا یکی بالش سم یکی پالت یکی بالشت نیاز نداریم صدقه میگیم صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگم میگیم صادقه مصدوقه راست گفته اگر گفته راست گفته همونطور که ابوالصدیق وقتی که که اومدن مشرکین گفتن که رفیق دلی که چی داره میگه میگه من رفتم اوسمان حقونی یک یک شب دراسته به سراغ سبحان الذي اسرى بعبده می گه رفت المقدس ظهر گشتن می گه امکانه قد فقط صدا اگر اگر گفته راز گفته من قبول دارم که وحی از آسمان ها براش بیاد قبول ندارم که یک شب بره تو بیت المقدس بر بره این مؤمن حقیقیه این مؤمن حقیقیه این کسی که تسلیم و يسلم تسلیما إن شخص تسليم در مقابل شرع ودين خداه فلا وربك لا يؤمنون وأقربه يسلم وتسليمه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار أجاب الله ورسوله جيتيز بجانب مسلم حق اختيار ما ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب لها الأمثال بري خدا مثال زدنا مشه خدا كل خدام قرآن فلا تضرب لله الأمثال فلا تضرب مثلا انسان من شما سخن میگیم با چی سخن میگیم؟ با زبان زبان مخلوقه جسمه خدا با چی سخن میگه؟ آیا خدا زبان داره را داره؟ آیا خدا با زبان هم سخن میگه؟ یک شخصی میاد با این مثال ها با این قیاس عقلی میاد چی؟ برای خدا مثال میزنه میگه لازمه صبحه معتزله و اشعری این بود که انکار کردن کلام خدا، گفتن کلام خدا مخلوق این بود که اگر ما بگیم قرآن کلام خدا هست، سخن خداست، پس لازمه سخن گفتن چیه؟ زبانه بدون زبان انسان نمیتونه سخن بگه. و خدا هم نمیتونه بدون زبان سخن بگه. اگر بگیم خدا سخن گفته، پس خدا زبان داره. پس چون خدا زبان داره، پس خدا جسمه، محدود به یک مکانه. تعدد عاله پیش میاد. خدا یک خدا زبان یک خدا گوش خدا در با خدا مجزا میشه تیک میشه این شکفت بود اومدن قیاس عقلی گرفتن برای خدا و با توجه به این قیاس های عقلی و این مثال های حسی مثال زدن با انسان اومدن در چی گرفتن اومدن با این مثال های عقلی اومدن بر خدا اثر نظر کردم و در کفر و الحاد افتادند نقد نفوذ نصوص فقدان انکار کردن خداوند آدم را با دست خودش شرقت بکنه انکار کردن خدا با خدا بشنوه انکار کردن خداوند ببینه الا بعض از ها که گفتن محال خدا نبینه محال خدا نشه مثل اشعریه و ماتریدی گفتن خدا باید بشنوه خدا ببینه باید ببینه اگر نبینه پس چطور میخواد روز قیامت سخن بگه امام نووی رحمه الله بعد از زمانی که میگذره بر نصوص مطلع میشه در وقت کلام خدا بعد میاد بر از مدهب اشعریت خودش بعد کتابی میدنیسه در بحث اثبات الحرف و صوت لله عزوجل اثبات سخن گفتن برای خدا که خداوند سخنی گفته مسموع که موسا شنید و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شنید وقتی که به معراج رفت بر میگرده نموتمست که به قرآن و سنت بودن پس قیاس و مثال زدن برای خداوند به بر هیچ وجه رسید مثال با محسوسات با جرمیات با خودمون زدن. اشتباس نباید بگیم چون ما لازمه است سخن گفتنمون زبانه پس خداوند هم اینطوره خیر نباید تو ذهن خودمون برای خداوند مثال بیاریم نه که تنها برای خداوند حتی برای ملائکه خداوند عالم غیب برای بهشت خدا برای هر مسئله غیبی که خداوند بهمون وحی کرده در قرآن گفته در قرآن اومده در سنت گفته رسول الله ما خبر داده حق نداریم که برای اونها مثال بزنیم بل إن جود رب أسأبه حتى محمد عيد أبو سيد الشاه أسس السنة هاي مغزية رميارة ميجي وليس في السنة القياس ولا تطلب لها الأمثال. ده سلّمات خياسني سب راي سلّمات ما صاد دنا بعد ده شرح بعضيها قزيها من البذوب مس مس النار هو طرح حديث غرر رضي الله عنه ده سنة تنزيه والبنام تحسينش ميكنه. فقال له أحد أحد الصحابة ألا أمرتهم أن يتوضعوا من الحميم أي الماء الحام؟ قال يا أخي إذا حدثت عرضة بحديث فلا تطلب له الأمثال. نا بحث این حرفی که اینجا ابو هره را رضی الله عنه میزنه به اون تابعی بحث مجملیه فلا ت ولا تضرب لها الامثال یک مورده اینجا من اشاره بهش نکردم چون مسئله, مسئله فخی بود چون بیشتر این قضیه که پیش میاد در مسئله اعتقادی پیش میاد برای سنت مثال زده نمیشه آلا گفتم من بخاطر همین دائره رو توسید و معروف بازش کردم گفتم چه میخواد در برای خدا باشه چی میخواد در مورد ملائکه خدا باشه چی میخواد در مورد تشریع خدا باشه دین خدا باشه مثل اینجا قضیه وجود داریم در هر موردی چه در سنت اومده چه در قرآن اومده نه که تنها در قران چون سنت مبین قرانه سنت مبین قرانه برای این سنت حق نداریم مثال بزنیم وقتی که برای سنت حق نداریم مثال بزنیم برای قران هم همینطور از باب اولا مسئله مجمل عامه هر مسئله‌ای در قرآن و در سنت اومد وظیفه ما تسلیمه دیگه ما حق نداریم قیاس بگیریم براش نه حق براش مثال بزنیم مثال با با مسائل حسی و مسائل به معروف مسائلی که برای خودمون رخ میده در مسائل دنیوی قال ولا تود تدغوا بالعقول ولا الاهواء انما هو الاتباع و ترک الهوا این مسائل عقلی نیست تعبدیه عبادت مسئله تعبدی معقول معنا نیست بعد هوا و هوس فهمیده نمیشه بلکه اتباع حواز و ترک از هوا و هوس مساله تعبدیه چرا فقط گفت گفتیم ما در رکوع سبحان الله چرا رکوع بری چرا یک گرو چرا دوتا سجده؟ کسی کافی میتونه دیگه کسی چرا چرا تا اومده؟ همون سجده کافیه کسی میتونه نظر نظر بکنه این مسائل قیاسی نیست این مسائل نمیتونیم با اجتهاد به دست بیاریم فقط وحی خدامنده وحی قرانه وحی سنت مسائل عقلی نیست. اگر پذیرفتی در باب عبادات، اگر در باب عبادات پذیرفتی که این وحی خداست در باب اعتقاداتم باید بپذیری. همینطور که اینجا پذیرفتی که معقول معنایی نیست، برای تو قابلیت نداره، نمی‌تونی بحث بکنی، در مسائل اعتقادی هم همین طور باید بپذیری که برای تو معقول نیست. بلکه وحی خداست. علی الرسول البراق و علینا التسلیم شرط تابعینمون گفتن. رسول خدا مبلغه و وظیفه ما چیه؟ و يسلم ما بلتسليمشم در مقابل این چيزایك برامون قال و من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلت لم يقبلها و يؤمن بها لم يكن من اهلها الايمان بالقدر خيره و شره الله در مسائل اعتقالي در اون مسائلی که فرقهای اهل ببعاد اهل احباب و اهل سنة مخالفات کردن اولین مسئله اعتقادی سریع که اهل بدعت اومدن مخالفت یک از اولی مسائل بحث اظهار نظر درباره علم خدا بود شخصی به اسم معبد جوهانی در زمان عبدالله بن عمر حدید از اهل خبر داده شد ده عبدالله بن عمر که اشخاصی در میگن ان الامر انو ام توذ احداث که خدا نمیدونه یعنی چی میخواد فردا روح بده؟ پس فردا چی میخواد روح بده؟ خدا از آیانه خبر نیست. امیدا از هار نظر کردند درباره قضا و قدر. بعد ابن عمر رضی الله عنه بعد حدیث جبرئیل رو میاره میگه مل ایمان قائل ایمان تو من بالله ملکه تی و قتولی رسولی و الیوم الآخر و القدر خیلی و شرک. این ایمان و القدر خیلی و شرک. و تصدیق بالحذیفه سه حدیث جبرئیل. والایمان و بهها. بعد ما بیش ایمان داشتیم. چند حدیث جبرئیل ما دوباره سعی مسلمان سر نده بعد ایمان به قضا و قدر داشته باشی. کسی بیاد حرفی از سنت را انکار بکنه کوففده. به خاطر همین این حرف مقوله کفری اونها در رد قضا و قدر الهی و علم سابق خداوند عبدالله بن عمار بی یاد اعلمهم اني بريم اني بريم بريم منهم و هم برآؤمني بهشون بگونها بريان از من و من ازشون برياستم اونها از من هستم. یک فرقی جدا از فرقی است. مسلمانان و مؤمنینی که خداوند گواهه بر ایمانشون داده و اعلان رضایت از اونها کرده این اولین اولین فرقه هایی هست روان فرقه های قدریه که بعد معتزده هم اومدن وحروف رای معتزله امامیه اینا همه پیرو معبد جوهنی شدن در بحث علم و گفتند که خداوند چطور میتونه از آینده با خبر باشه اگر خداوند از آینده باخبر باشه خداوند میشه ظالم و چون خداوند ظالم نیست پس خداوند از آینده باخبر نیست همش مسائل داره یک مثال میذارم چه چیزی سبب شد اونها در نفی علم برای خدا بیفتن بحث چین بحث مثال و قیاس برای خداوند لازمه علم عقله لازمه این عقل اینی که قدیم نباشه و خداوند قدیمه حتی گفته رسول گفته قدیمه و چون خدابند قدیم حدوث نباید در افعالش بیاد چون حدوث رفعالش اومده در نتیجه خداوند از آینده با خبر نیست اگر از آینده با خبر باشه داره در علمش حدوث روخ میده در فعلش حدوث روخ میده این شبهه اونها بود که سبب شد نه اینکه نس سنت را رد بکنن انت امنت بالله و ملائکتی و رسولی و اليوم الاخری و القدر خیرهی و شره نه را قرآن خداوند در قرآن میگه نه میگه الله عنده علم الساعه علم الساعه چی علم قیامت عنده خدا میدونه از آینده کی بدون شک از آینده میدونه الله الله علیم خبیر خداوند علیم متصف علمش خداوند از قبل میدونه الله عليه وسلم علیه و سلم قبل و زمین را سال قبل از اینکه اصلا ها زمین رو خلقت بکنه خداون قلم رو خلقت که هر چیزی قرار رو رخ بده قبل از اون قلم میدونسته و اون قلمم 50 قبل از آفرینش همه چیز نوشته بله. ولو الله فيهم خيرا لاسمعهم خدا در میدونسه که در خیری هست تو خیلی بهتر خدا الله فيهم خيرا خدا قران میگه تب يد ابي لها هنوز بود تبری ابو جه و منافقین حفر و کرد و میدونست خدابند اسم ابو لحب را در قرآن بود اگر خدابند عالم غیب نبود از آینده نمیدونست اسم چرا اسمشو بود چرا گفت چرا خدابند میگه ولو علم الله خدا عالم از قبل بوده نبوده بدون شک خدابند عالم بوده قبل از این که آفرینشی باشه و خدابند هم در لوح محفوظ نوشته ترسود داده قلم بنویسه بخاطر همین خدابند در علمه الا بما شاء ولا يحقنا کسی با علم خداست مگر اون چیزی که خدا خودش اندک علم اندک علم رو خدا بهمون داده حالا یک شخصی با اندک علمش بیا در یک مسئله غیبی اظهار نظر بکنه بگه در خدا خداون اظهار نظر بکنه بگه خداوند نمیداند خداوند از آینده خبر نیست الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر حالا خداوند عالم نبود پس چجوری نمیتونید یعنی چگونه تونست این خلق و آفرینش را به وجود بیاره این چشم ببینه با این دقت این گوش بشنوه. بشنبه من خلق کسی که آفرینه نمیدونه نمیتونه خدا یعنی میشه بگه خدا ندونه از آینده و بعد این خلق و این آفرینش با این دقت و این نظام و آفرینش خدا من خلقت بکنه بی آفرینه خیر ممکنه خدا باید داشته باشه که تصادفی در این آفرینش پیش نیاد، تصادفی پیش نیاد، کره زمین از مسیدش خارج نشه، انسان با گوشش نبینه، با جش ببینه. کسی که الدار میدونه از آینده که چی میشه، این چیزها را قرار میده. هر چیزی را به جای خودش قرار میده. ولی این آفرینش را قدابنده. امامت بری رحمه الله میگوید، انه لا یعلم احد سباه و به بحث و لا یفیثون به من من میکنه. وأنه لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يعلمه وأراده فعلمه كسنة متناهية من خضاب بش ما قال شيء الخضاب ولا وإنما يعني لذلك أن أن أن العبادة لا تنبغي لمن كان جاهلا فكيف فكيف فكيف تعبدو فكيف يعبد من لا يعقل شيئا البتة من كذا كذا من أصنامه من من من وطن أو صنم میگه بحث این آیه رو که میکنه که بزرگترین آیه قرآنه عظیمترین آیه قران آیه الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم که و لا یحیطن بشیئا من علمه میکنه میگه این آیه در تهذیب و مشرکین یعنی در مبارزه طلبی و مشتکینه ای مشرکین خدای دانا که شما از علمش نمیدونید جز اندک علمی آیا این خدای عالم با اون خدای جاهل از اون مرده یا اون کسی که یک کمی از علم شما رو داره اون کسی که مرده یا اون کسی که زیر کاخ خابریه اون بوتی که شما با دست خودتون خلق کردید علمی نداره میخواد اینو میگه امام میگه که اون شخصی که نمیدونه لیاقت عبادت و پرستش رو نداره اون کسی که از آینده نمیدونه اون کسی که با خبر نیست از آینده علیم نیست نسبت به آینده این صفت عبودیت درش نیست نباید فرسیده بشه دقت بکنید و انما یعنی بذلک ان العباده لا تنبغي لمن كان جاهلا کسی که جاهله کسی که نمیدونه، جاهل. اگر بگیم خداوند جاهل. اگر عالم نیست جاهله، درسته؟ حالا بگیم خداوند جاهل. آیا این کسی که جاهل لیاقت پرستش و عبادت رو داره؟ نزد معتقدله خدا این رو روش میکنه. تعالا الله عما پلون علوم من یعنی شما نگاه بکنید خدای جهانیه، خدای قدریه کیه؟ یک شخص جاهلی. یک شخصی که عالم نیست، از آینده باخبر نیست. یک شخصی که صفات عبودیت درش نیست. صفات خدایی درش نیست. خدایان در قرآن میگن حالا میذارن. میگه در قرآن گفته و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. لنعلم ما قبل نکردیم مگر اینکه بدانیم اما متبری اینجا خلاصه نافقت فقط نکاتی میگم میگن لوکنی فقط چقدر شبهشون یک شبه ضعیفیه امام طبری جوابشو میده میگه که شما اگر در لسات بلاغه امام میگه در جواب کسانی که استدلال کردند لنعلمتای که بدانی یعنی خداوند نمیدونه الان میخواد بدونه وقتی که قبل رو عوض کرده کی مومنه کی کافره اما متبری جوابشو میده میگه که اونطوری که شما فکر کردید نیست لنعلمات اینجا اولا نعلم جمع به کورب منظورش بحث اولیای خودش و بحث مؤمنینه الا لیا علم اولیایی منظورش بوده چرا؟ میگه مثلا گفته میشه در لغت عرب عمر ابن خطاب بغداد را فتح کرد ولی عمر ابن خطاب در کجا نشسته بود در مدینه چطور عمر ابن خطاب فتحش کرد؟ با امرش، با دستورش، با لشکلی که پرستاده بود درسته؟ اثبات فعل نسبت به شخصی که امر کرده اسباب تفعیل به ان از اسباب چی؟ از باب خصوصیت، از باب اختلال، از باب این چیز در لغت عرب هست. هر که فاعل تدیگه ای. ولی چون اون فعلی که رو به امر یکی دیگه بشه، هر چنکی فاعل نباشه از باب شرف با اون نسبت داده میشه. اینجا هم همینطور. و این مثال ها زیاده. یعنی مثال های لغوی، بحث, بلی قدار نمید بحث لغت، مثال ولی خدا نمیذاریم اینجا. بحث لغت، لغت عربه. اینجا در لغت عرب. خدا خودش میدونه نه اونجا خدا علی من خلق. خدا بحث از علم سابق خدا میکنه نباید بیام با این آیه با هم دیگه بزنیم باید با هم دیگه جمع بندیم چطور باید بفهمیم با توجه به نصوص قرآن و سنت باید بیام آیات رو کنار هم دیگه بذاریم و اون شبه رو پاسخ بدیم و نه اینکه بیام در باره خداوند با اظهار نظر بکنی بدون علم ما در بحث قضا و قدر چطور تو داریم که باید بهش اتفاق داشته باشیم من خلاصهوار فقط میام چون تارفیه بحث اینجا این نمیده که ما بیام به تفصیل در مورد قضا و قدر در پردادیم فقط یک اصول کلی رو باهم گفت و یک جواب کلی هم باهم داد ناگرید قضا و قدر و ایمان به اون چهار تا رتبه داره مرتبه داره مرتبه اول علم مرتبه اول علم ایمان به اینکه خداوند عالمه قبل از اینکه آفرینش داشته باشه چیزی رو بی آفرین خلقت بکنه خداوند عالمه و کان الله بكل شيء علیم و کان الله اسعد و کان وكان الله بكل شيء عليم ألخب خدا دون أبودي. علم خدا أبوده باش إيمان داشت باش إيمان كنانك كرسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني قبل كتابتهم علم خدا أبوده بعد علم خدا كتابات ميوات أول مراتب قد وقتل أول علم بعد كتابات أول علم خدا أبوده بعد علم خدم رفضه بأن خلقات ميتونه كي؟ کتب الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض ب 50000 سنه فانجهز القلم قبل ذينك وسمائين وخلقت بکنه خدا قلم رو خلقت میکنه که تمامی چیزهایی که قرار روح بده بنویسه بله این قلمه و خداوند در قرآن از این قلم و از این لوح محبوس یاد میکنه و وما تسقط من ورقه الا يعلمها ابل علم هیچ ورقه از درختی نمیفته هیچ چیزی روح نمیده ملکه روزنه راه نمیره هیچ چیزی روح نميدي مجال در علم سابقه خدوها اس إلا يعلمها وما تسقط من ورقةك إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راقبة ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال نفسك تنفي في كتاب مبينها في اللوح المحفوز هذا شيء روح نميدي در لوح المحفوز اس وهي شيء روح قبل اللوح المحفوز أن باشي خدوان مجد بعد رتبه علم وكتابات رتبه ارادت خدا میاد و ما تشاؤون الا أن يشاء الله رب العالمين اثبات مشیئات برای خداوند اینکه خداوند مشیئت داره خداوند مشیئت داره شما ناخرید در قسمت اول مثلا در بحث علم و کتابت شما معتزله دارید معتزله قدیان قبول ندارن خداوند از قبل قلمی رو خلقت کرده که بنویسه و قبول ندارن که خداوند علم سابق داره این دو تا این کار میکنن قسمت سوم شما اراده دارید مشیئت خداوند و اثبات مشیعت برای بنده و ما تشعونن اثبات مشیعت و ما رمید اید رمید اونها این آیات را به نفع خودش تمام میکنن جبریه و انتار مشیعت میکنن برای بنده و میگن خداون فاعل تنهاست و بنده هیچ کاری نیست ما مثل شاخ برگ درختیم که تکم میخوریم فرق جبریه در ضد قدریه به وجود اومدن اول قدریه بودن قدریه کسانی قدر را قبول ندارن این این باب بیشتر شده کنیم یعنی علم سابق خدا و کتابت سابق خدا را قبول ندارن جبریه قائل به جبرن آشاعر و ماتیدی دیه به اسم کسب قائل به اینن که انسان مجبوره یعنی انسان فعلی که دارهش انجام هیچ اختیاری نداره ما میگیم انسان مسیر و مخیار صحابه وقتی که رسخت و سلام بیش بيشم حديثي يقول في قابل ذيك وصابون هوق وزمين خلقات بشي كثاني رات تمر أدام ميري وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوري من ذريته واشهدهم على أنفسما لست بربكم قالوا بلى بلى رسول الله من كثاني أز أهل جهنم جذوك كثاني أز أهل بهش قف إنا جهنمين أو بيشتين بأس صحابي قفتهم قالوا قال من عمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما كل قله فالزيش ما عمل كذنه شما نمیتونید برای علم خدا قضاورد بکنید. هر کسی مویسره بر اون چیزی که خداون برای حققت کرده این شما از علم خدا شما نمیدونید هم رد بر جبریه در این مقوله رسول, رسول صلی الله علیه وسلم هم رد بر هم رد بر قدریه رد بر جبری هرچون گفت اعملو یعنی من اختیار دارم باید عمل بکنم شما یک سری اعمال انجام میدید و اختیار دارید من با اختیار خودم اینجا و با اختیار خودم دستم بلند میکنم کسی نمیتونه بگه من بدون اختیارم هیچ آخری نمیگه من اختیار ندارم یک سری اعمال هست من ويا توش هیچ از خودم هیچ اختیاری نداشتم فرزند فلانی توی فلان کشور به دنیا اومدم با این شکل و توی این قضیه من هیچ دخالتی نداشتم یک سری امور اینطوریه خداوننده تقدیر کرده مقدر کرده بر من اینطوری باشم یک سری امورم اختیاری از اون مقدرات که من با اختیار خودم اون تقدیر رو انجام بدم وظیفه من عمل کردن من نمیدونم بهشتی جهنمیم فایدهش در چیه این قضیه چون من نمیدونم خاتمم به عمل جهنمیه یا به عمل بهشتیانه زحمت میکشم اخلاص در عمل انجام میدم که شاید من آخرین لحظه عمل کفرى انجام بدم و جهنمی بشم پس تلاش میکنم خالصانه عمل برای خدا انجام بدم که جز بهشتیان باشم نه اینکه مثل مشرکین جبریه باشیم و بگیم که نه بر فعل بدنمون ناشایستمون از تقدیر خدا سوء استفاده می‌کنیم جبریه مثل مشرکین فرق با هم دیگه نگدارن سیقول الذین اشربتو لو الله ما اشركنا ولا ابونا سیقول الذین اشركوا مشرکین مشرکین میگن اگر خدا میخواست ما دو شرک نمی‌شدیم پس چون خداوند تقدیرش اینطوری باشه که ما الان در شرق بیفتیم پس همین کار درسته خیر چون تو اختیار داری تقدیر کونی خداوند دلالت بر تجویزی کار نیست چون کولن نوشته تو در آمریکا باشی تو در اروپا باشی دلیل بر این نیست که تو مشرک باشی چون پدر و مادرت ابوالهب و ابو, ابو جهل دلیل بر این نیست که کار اونها درست باشه چون این تندیر کونیه خداوند از تو چی خواسته با مشیت شرعش از تو خواسته که تو راه حق را بگیری راه دین را بگیر، اراده تنو اراده, اراده، کونی داری، اراده شخصی داری. اراده کونی توش محبت نیست، رضایت نیست. معتزله، اشعاعره، کل فرقهای شما در بحث قضا و قدر گمراه شدن، ندونستان فرق بگذارم بین اراده شرعی و اراده کونی. اراده کونی بحث خب خو... کجا باشه، زمین کجا و کجا باشه، شکل من چطور باشه، این اراده کونی خداست. اراده شرعی اقیم الصلاه، اتو الزکاه، اراده شرعیه. خداوند ازمون خاصه بر راضی میشه از ما خوشتون میشه اگر اراده شرعش رو بگیریم ولی اگر نگیریم از ما ناخشنود میشه از ما ناراضی میشه اخرین من نمیخوام زیاد برامون این مساله صحبت بکنم بحث الی زیاد گفتم اگر من وارد فلوات بشم دیگه اصلا تمون نمیشه مراتب قدر علم کتابت اراده اخریشم خلق والله و ما تعملون والله خلقكم و ما خداوند شما و اعمالتون رو خلقت کرده معتزله میگن خداوند خالق اعمال ما نیست خودمون خالق اعمال خودمونیم هر کسی خالق عمل خودشه خدا میگه والله کن شما رو خلق کرد و همچنین عمل شما عمل ما مخلوقات خدا هستند ولی که با اراده ما انجام میشن چون با اراده ما انجام میشن دلیل بر این نیست که چی که خداوند خالق و اون نیست بحث خلق یک طرفه بحث اراده هم یک طرف دیگر هست نه مساله خلق یک گمراهی پیش میاد فقط از باب تسلیه این ادعا یک گمراهی پیش میاد اونو فقط میخوام تذکیه بکنم شما نگاه بکنید افعال خدا محلل است کار خدا من هیچ وقت بدون حکمت نیست اف اف اف آیا حساب کردید ان ما خلقناکم عبثا ولفت هذه البيعوده خلقتو دیدی کار خدا بیهوده نیست کار قطعا حتمیه حکمت روش است و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین برای تو نفر نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان حکمتی هست در فرستادن رحمتی باشه افعال خدا معلله اب شما مثلا نوا یک گمراهی که اینجا پیش میاد مثلا از فقه های کلامی که مثلا خیلیها ها توش میفتن از دیوبندی ها یا مثلا از ماتریدی ها و اشاعره توش میفتن بحث اینه که میگن که اگر بگیم علت بیا تو شعر خدا پس ضمن میشه محتاج نیازمند اون علت و میشه به قول معروف الان اظهار نظر در باره خدا کردن اینکه ما دیگه مثلا مسائلی که رسالت رو میشه پس ما دیگه مجبور نیستیم چون اعتقادشون بر جبره مسئله علت مسئله جبر همه اینها بعد هم دیگه بسته شما دیدی کسانی که مثلا میرن جماعت تشکیل میشن وقتی که میرن بن میگردن مثلا میگن که کافو نمیگوره آتش نمیزونه خلق میکنه بن مشیت کونی و اراده ای کونی و اراده ای شرعی و بین فرق بین مشیت خداوند و مشیت بنده و بحث اثبات علت در فعل خداوند ناکنید خداوند خداوند هیچ وقت کار بدون حکمت انجام نمیده خداوند آتش رو ساخته برای سوزاندن کسی بیگه آتش نمیسوزونه خلاف دستور خدا داره حرف میزنه حکمت خدایی بوده مشیت کونی خداوند لازم نمی این نیست که خدا دوست داره اونا میگن اگر بگیم خدا آتش رو خلق کرده یا ابلیس را خلقت کرده مشيئات خدا روش بوده پس خداوند دوست داره لیست خداوند رو دوست داره خیر در مشیعت کونی هیچ محبت نیست سلاذنش نیست والله لا يحب الفساد لا يحب الظالمين درسته ظالمین به اهل فساد دوست داره ولی خب ظالمین هستن چون هستن دلیل بر تجویذ فعلشون تجویذ ظلم نیست این مشیعت کونیه دلیل بر این نیست چون شرک شرک انجام تو شرک انجام تو انجام تو بلکه باید تلاش بکنی راه نجات رو بگیری و بس خب اونها الان در این قضیه افتادن، در این منجلاق افتادن و میگن که اگر ما بگیم چاقو می برد، ما بچار شرک شدیم، فعل, فعل دیگری غیر از فعل خدا داریم ساکت می کنیم خدا میگه والله خلقکم و ما تعملون، شما و عملت مخلوقید، شما میگن نه چاقو هم می برد یعنی عملی غیر از عمل خدا هم هست و شما مشرکید اشاعره و ماتریدیه اگر یعنی کسی اگر بگه چاقو برد رو مشرک میدونن آیا این حرف درسته اگر کسی بگه می برد مشرک میشه خیر پس صلی الله علیه و میگه اعقلها شخص من شطرش کوفره هسپتال رسول قال اعقلها ثم توكل امل بما اتخاذ اسباب از توحید از توکل رسول الله صلی الله علیه و آله میگه عباد الله تداو و لا تدو بالحرام دارو باشید اگر دارو نگیرید شما گناهکارید میتونید خودتون درمان بکنید نکنید پس اتخاذ اسباب شرک نیست چه چیزی چی سبب شد این انحراف فکری پیش بیاد انحراف در فهم نصوص شریعتی که دلالت بر اراده خدا و خلق خدا میده گفتم این بحث اگر بخوام باز بکنیم بحث خیلی زیاده بله ال ایمان قمن السنه اللازمه که من ترك منها فضل لم يقبلها و یؤمن بها لم یکن من اهلها السننتک لازمه بر ما که ایمانش داشت ایمان بهش داشته باشیم اگر قبولش نکنیم از اهل سنت نیستیم راه مستقیم، سرعات مستقیم. خارج از سات مستقیم میشیم ایمان به قضا و قدره اگر ایمان به قضا و قدر نداشته باشیم چه خوبشته بدش و احادیث را تصدیق نکنیم ایمان بهش نیاریم اونجا هست که ما از اهل سنت خارج میشیم میشیم اهل بدعت لا يقاللیما ولا كيف نمیتونیم حق نداریم بین چرا خدا میدونه چطور خدادونست. ان ما هو تصح والإمان بها؟ ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحتمله فعليه الإيمان به والتسليم له مثل الحديث الصادق المصدوق أقول لك حديثي درك نكشي عقل نكشي كفاياتكن بقول رسول الله قفتي رسولهم صادق وقد ونام تفسيره شجرة مثل حديث نسخ روش در جنين كوقتية جنين 4 ماهمشة در شكل مادرش روح درش نمیده میشه و نوشته میشه شقی هو ام سعید یا سعادتمنده چطور این دیگه ما نمیدونیم علمش به ما رسید نه روح درش نمیده شد خداوند می نویسه و خداوند نمیدونه از و در لایح محفوظم هست طب چه هست الان بازم نوشته بشه کجا نوشته بشه چطور نوشته بشه یگفتم ش ام سعید بگیم وحی غیب و قبول داریم رؤسرو تش صلی الله علی محمد و علی محمد